صفحه 1096 یک ماه پس از تاریخ زایمان ملکه را درون قفصی جای دادند و او هم این خفت و خالی را در کمان شجاعت بر هم بار کرد و مردم هم به دستور سلطان حلکام ورود به مسجد بر روی او آب دهان میانداختند خواهران ملکه با پیروزی در نقشه خود شاد شده و خود را در اوج خوشبختی احساس می کردند دو شاهزاده و شاهزاده خانم کتولو مشغول بزرگ شدن بودند و با مراقبت های دلسوزانه و شبانه روزی حاکم و همسرش و پرستاران ورزیده روز به روز بزرگتر و باهوشتر می‌شدند تا آنکه به سنو رسیدند که آثار بزرگی و نبوغ در آنها پدیدار گشت و نمایان بود که با دیگران تفاوت آشکار دارند نام شاهزاده بزرگتر را بحمن، دومی را پرویز و شهستاده خانم را پریزاد گذاشتند حاکم به آموزش و سوادآموزی شاهزادگان پرداخت و استادان مشهور را برای آموزش آنها به خدمت گرفت و, و این نوع آموزان استعداد و نبوغ زیاد از خود نشان میدادند و حاکم و همسرش از این جهت بسیار خوشنود بودند زیبایی و شاهزاده خانم روزافزون بود و توجه حاکم و همسرش را به سوی شاهزاده خانم کشانده بود شاهزادگان در رشته‌های گوناگون درسی به غی و استعداد از خود نشان دادند که استادان گفتند به زودی این دانش آموزان از راهنمایی‌های های ما بین نیاز گردید و دانش کافی از هر جهت در علوم رایج زمان به دست خواهند آورد. حاکیم احتیاج به خانهیه بزرگه علاقی داشت که فصل گرما را هنگام تابستان در آنجا بگذراند بدین منظور در فاصله دور از شهر در کوف قطعه زمینی به وسعت چندین هزار متر خرید، و خانه قدیمی موجود را که در این زمین بود ویران کرد معماران برجسته برگزید و با نظر خیش نقشه بنای قصر زیبایی با باغهای بسیار زیبا با درختان گوناگون و آبنماهای قشنگ و آب‌بندان با سفار رو روی کاغذ آورد خوشبختان بیشزار و درختان سری هم در این زمین موجود بود حاکم پول فراوانی را برای برپا کردن بنای عظیم قصر کنار گذاشت و کارگران بسیار در قسمت‌های گوناگون ساختمانی استخدام کرد که نقشه را با سرعت شروع کنند و خود نیز در اوقات بیخاری به نظارت ساختمان می‌پرداخت. بعد از مدت‌ها کار شبان روزی بنای قصر به پایان رسید و از درختان فراوان موجود، باغ‌های زیبا درست شد و درختان بسیاری هم بر آن امزودند و انواع حیوانات در این بیشزارها جای دادند تا شاهزادگان هنگام شکار از آنها استفاده کنند. و سرگرم شوند بعد از آماده شدن قصر تابستانی حاکم به حضور سلطان رفت و استدعا کرد چون به سن پیری رسیده و در دستگاه پدر سلطان و خود سلطان سالیان سال خدمت کرده اجازه دهند از خدمت کناره گیری کند سلطان که از خدمات او خوشنود بود از او پرسید اینک از من چه میخواهی؟ حاکم پاسخ داد سلامتی پادشاه فقط آرزویم این است که همواره در زیر سایه شاه باشم سلطان هم با کنارگیری او موافقت کرد. بعد از موافقت شاه، حاکم همراه با شاهزادگان به قطع یه حرکت کرد و در آنجا مسکن گزید. همسر حاکم مدتها پیش به درود زندگی گفته بود و حاکم هم بعد از شش ماه به طور ناگهانی چشم از جهان فرو برد و فرصت نیافت تا به شاهزادگان بگوید که پدر و مادر واقعی آنها شاه و ملکه هستند. اتفاقا حاکم در نظر داشت شب همان روزی که در این راز را فاش سازد که عجل به او مهلت نداد شاهزادگان بعد از فوت پدر به زندگی خود ادامه دادند و سوگواری آبرومندی برگزار کردند و با تشریفات بسیار پدر را به خاک سپردند و مراسم مجللی طبق شیوهٔ جاری برگزار شد آنها مدتها در سوی پدر گریه وزاری کردند و ناچار زندگی روزانه خود را دنبال نمودند پدر ثروت بسیار برای آنها گذاشته بود و با تحصیلات و کمالاتی که داشتند می توانستند در صورتی که بخواهند به راحتی به دربار شاه وارد شوند. در یکی از روزها که شاهزاده بهمن و شاهزاده پرویز به شکار رفته بودند، بانوی پیر با خدایی چکش در را به صدا در آورد. خدمتکاران در را گشودند و آن بانو اظهار داشت هنگام نماز است. اگر اجازه دهید ده در این خانه نماز بگذارم. خدمتکاران به حضور شاهزاده پریزاد آمدند. و از او اجازه گرفتند شاهزاده با خوش اجازه داد تا پیرزن در نمازخانه خصوصی خانه نماز بگذارد بنا به پیشنهاد شاهزاده خانم بعد از آنکه بانوی پیر از نماز خواندن فارغ شد سراسر بنا و تالارها و باغ‌ها را به او نشان دادند و بعد هم به حضور شاهزاده خانم بردند شاهزاده که بانوی پیر را دید گفت خوش آمدید مادر جان خوش به سعادت شما که این اندازه شناس و با ایمان هستید عبادت شما قبول باشد بفرمایید در کنار من بنشینید خوشبختم که سعادت دیدارتان را امروز به دست آوردم ای کاش همه مردم مانند شما دانا و آگاه باشند آگاه سعادت خانم از جای خود برخاست و دست بانوی پیر را گرفت و او را در کنار خود نشاند بانوی پیر گفت من شایسته این همه محبت نیستم اما فرمان شما را اطاعت می کنم سپس میوه و شیرینی خوراکی آوردند و از بانوی پیر پذیرایی کردند. بانوی پیر از زیبایی و شکوه این قصر تعریف کرد و گفت: سلیقه شما را میستایم. فقط سه چیز در این قصر کم است که با وجود آنها این کاخ بدون کمبود خواهد بود. اول مرغ سخنگو که مرغی است بی‌نظیر و در جهان مانند ندارد. وقتی شروع به خواندن کند تمام پرنده‌های خاننده دور آن جمع و با او آهم آه آواز می شوند دوم درخت آوازخان که تمام برگ آنچون دهان درخت هر کدام آهنگ به خصوصی را زمزمه می کنند و در مجموع کنسرت زیبایی را برپا می سازند که پایان نخواهد داشت سوم، آب زرین زرد که ابتدا استخر بزرگی حفر می کنند بعد یک بطری از آن آب را در آن استخد می ریزند بلا استخ از آب لبریز می شود و به صورت چشمه دوشان و زاینده در می و هموار آب در آن موج می زند. شاهزاده با آگاه شدن از این سه موضوع بسیار خشنود کردید و از بانوی پیر تشکر کرد و جای آن سه چیز را از او پرسید. بانوی پیر داد در مرز این کشور و هندوستان است و می توان این سه چیز را در آنجا فراهم کرد. جاده مقابل قص را باید تی کرد و مدت بیست روز راه پیمود. روز بیستم با شخصی که روبرو شدند نشانی آن سه چیز را بپرسند و او راهنمایی خواهد کرد. بانوی پیر بعد از این توضیحات خداحافظی کرد و از قصد خارج شد. شاهزاده خانم همش در این فکر بود که چگونه و توسط چه کسی خواهد توانست به این سه چیز دست بیابد. وقتی برادرانش از چه برگشتند و او را متفکر دیدند علت را از او جویا شدند و شاهزاده خانم هم داستان ورود بانوی پیر و نماز گذاردن او و اظهار نظر وی را درباره قرش و کمبودهای آن بیان داشت. شاهزاده خانم گفت من این موضوع را به شما گفتم تا یا شما را بدانم اما من شخصا وجود آن سشیز را در این باغ زیبا ضروری می دانم گرچه بدون آنها هم این باغ نظیر است اما وجود آنها این باغ را تکمیل می کند. شاهزاده بهمن گفت آنچه که تو گفتی بسیار دوله به توجه است و من هم با تو هم عقیم ما هر چرا که تو بخواهی ما میخواهیم فقط است تمایل خود را ابراز کنی من خودم راهی این سفر خواهم شد فقط مقصد و راه را به من نشان بده شاهزاده راه و مدت راه پیمایی و سفر را برابر گفته های بانوی پیر به بهمن بهمن گفت و شاساد بهمن هم گفت که فردا صبح آزم سفر خواهد شد آن شب را شاهزادگان با شادی و محبت در کنار یکدیگر گذراندند و به سفر گفتگو کردند. صبح روز بعد شاهزاده آماده ی حرکت شد و خواست بر اسب سوار شود که خواهر او را در آغوش گرفت و گفت: برادر، فراموش کردم بگویم، این سفر حوادث خطرناک دارد. من حاضرم از دیدن و داشتن آنس چیز محروم باشم ولی تو را به خطر نیندازم. شاخصادی گفت من تصمیم خود را گرفته ام و باید به این سفر بروم سرنویش هرچه باشد بر سر آدمی همان خواهد آمد در این هنگام شاخصاد بهمن از جیب خود چاقویی در ورد و به خواهر داد و تیغه آن را به او نشان داد و گفت این تیغه پاک و شفاف است تو هر وقت نگران من شدی به این تیغه نگاه کن اگر شفاف بود بدان من زنده و سالم هستم و خون آلود بود نشانه آن است که حادثهی برایم رخ داده است. شاهزاده سوار بر اسب شد و راه سفر در پیش گرفت. سپس 20 روز به سفر ادامه داد تا در بیستمین روز پیرمرد زش روی را دید که در سایی درختی مقابل خانه محقر خود خوابیده. جلو رفت و متوجه شد ابروها و موهای پیرمرد مانند پنبه سفید است و سویلهایش از بناگوش در رفته و موهایش هم تا روی زمین آمده است. و به جای لباس پارچه‌ای روی شانه‌هایش را پوشانده شاهزاده از اسب پیاده شد و افزار در دست کنار پیرمرد ایستاد و به او سلام کرد پیرمرد پاسخ داد ولی مفهوم نبود زیرا سیبیل‌های انبوه او روی لب‌هایش را کاملا پوشانده بود و مانع فهم سخنان او میشد و موهای ابرو و ریش های انبوه او و موهای بلندش او را به شکل خرس پرپش می درآورده بود شاهزاده که از سخنان درویش چیزی دستگیرش نشده بود به او گفت اگر اجازه فرمایید من مقداری از موهای سیبیل و وریش و سر شما را کوتاه کنم. زیرا شما را به شکل نازیبایی درآورده است. درویش مخالفتی نشان نداد. شاهزاده غیشی از جیب درآورد و به اندازه لازم از ریش و سیبییل درویش کم کرد و او صورت جوانتر و بهتری به خود گرفت. درویش لفخندی زد و خشنودی خود را ظاهر ساخت. و از شخصاده سپاسگذاری کرد شاهزاده به درویش گفت از شما پرسشی دارم درویش که از او محبت دیده بود پاسخ داد آنچه را بدانم به شما خواهم گفت شاهزاده درباره مرغ سخنگو درخت آوازخان و آب زرین زرد پرسید درویش پاسخی نداد شاهزاده دوباره پرسش خود را تکرار کرد این بار درویش چهره درهم کشید و تغییر رنگ داد و نگاهش به سوی زمین ثابت کردید آنگاه سر را بالا کرد و گفت من با شما دوست شدم و دلم میخواست به شما یاری کنم شاهزاده پرسید چه شد که نظرتان را تغییر میخواهید بدهید درویش گفت حفظ سلامتی و جان شما زیرا قبل از شما اشخاص بسیاری در دستجوی ماغ سخنگو و درخت آواز خان و آب زرین به سراغ من آمدند و من آنها را از دنبال کردن این سه چیز برحذر داشتم اما با اصرار آنها ناگزیر محل آن سه چیز را به آنها گفتم و آنها به امید دست‌یابی به آن رفتند و دیگر هرگز مراجعه نکردند و جان خود را بر سر آنها نهادند شاهزاده در پاسخ دردیش گفت اینها به جای خود من کاملا مسلح و شجاعم این سخنان تصمیم مرا نمی تواند تغییر دهد فقط راه را به من نشان بده درویش گفت در این راه توش بسیاری وجود دارند که تو آنها رو نمی بینی، آنها نامرعی در این صورت چگونه خواهی توانست با آنها به جنگی؟ باز هم شخصاده در خواست خدا تکرار کرد و گفت من احتیاج به آن چیز دارم و باید حتما به جستجوی آن و یافتن آنها بپردازم در ویش گفت حال که نصیحت مرا گوش نمی کنی ناچارم راه را به تو نشانده آنگاه دست خدا به درون برد و جامی از آن بیرون آورد و به دست شاهزاده داد و گفت این راه را دنبال کن ولی قبلا این جام را روی جاده بگذار و دنبال این جام که حرکت می کند تو هم با اسب خود حرکت کن به کوهی می رسی باید بالای آن روی و در دو طرف تخت سنگ های بزرگ سیاه رنگی وجود دارد که آن را می بینی و نباید پشت خود را نگاه کنی صداهای در هم و مبهمی می شروی که میزیست و تو را من از رفتن میکنند باید آنها را ناشنیده بگیری و ترس به خود راه ندهی و دنبال این جام حرکت کن و در هر کجور جام ایستاد شما هم باید همونجا بیستید و از عصد پیاده شوید و اثرش را روی گردن اسب بگذارید و آن تا زمان بازگشت شما در همان محل خواهد ایستاد وقتی شما به بالای کوه رسیدید در آنجا قفسی را میبینی که در آن مرغی را که در جستجویش هستی میبینی و از آن مر سراغ درخت آوازخوان و آب زرین را میگیرید و آن مر شما را راهنمایی خواهد کرد. من آنچه را میدانستم برایتان گفتم. اینک باز هم از شما میخواهم که از همین جا مراجعت کنید و خود را به خطر نیندازید شاهزاده بهمن از درویش تشکر کرد و گفت نگران نباش من به ترتیبی که گفتی عمل می کنم و پشت سر خدا نگاه نخواهم کرد. بیاری پروردگار در این کار پیروز شده و سلامت برمیگردم و دوباره شما را در همین محل خواهم دید درویش خوب پیروزی شما باعث خوشنودی من خواهد بود آنگاه شاهزاده سوار بر اسب شد و از درویر خداحافظی کرد و جام را به سوی جلو پرتاب کرد جام با سرعت بسیار به سوی جلو در حرکت بود به طوری که شاهزاده ناچار شد به طور تاخت دنبال آن با اسب بتازد آنقدر رفت تا جام در پای کوه بی حرکت ایستاد، داد هم از از پیاده شد و بالای کوه را نگاه کرد و همون گونه که در ویش گفته بود سنگهای سیاه بسیاری را در بالا مشاهده کرد از کوف بالا رفت هنوز مقدار زیادی نپیموده بود که صداهای عجیب و مبهمی از پشت سر به گوش او رسید بدون که صاحبان صدا را ببیند، صدایی گفت این جوان قافل قصد رفتن به خجا را دارد مانع رفتن او چوید اده دیگر میگفتند او را بگیرید و نابودش کنید گروهی هم با فریادهای بلند میگفتند گفتند ای راه زند. ای آدم کش ای حیوان در این حال در کنار این گونه شعارها سرای دیگر هم به گوش می رسید که می گفت نه او را آزار نکنید بگذارید سالم از این مرحله بگذرد. ما قفص و پرنده را برای او نگه داشته ایم با وجود شنیدن این فریادهای آزار دهنده شاهزاده پیش میرفت اما فریادهایی که از پشت سر و از سوی مقابل شنیده میشد لحظه بلندتر و گوش خراشتر میگردید به طوری که ترس رفته رفته بر شاهزاده چیره گردید حس می کرد پاهایش میلرزد و نیروی بدنی و روحی خود را به تدریج از دست میدهد دیگر استقامت و شجاعتی در خود نمیدید در اینجا بود که نصیحت درویش را فراموش کرد و به پشت سر خود نگاه کرد. درست در همین لحظه بود که به سنگ سیاهی مبدل شد. سایر سنگ‌های سیاه موجود در بالای کوه هم انسان انسان‌هایی بودند که در جستجوی یافتن همان سه چیز مرده دلخواه شاهزاده به این کوه کشانده شده بودند. از به شاهزاده هم به همین سرنوشت گرفتار شد. از لحظه‌ای که شاهزاده بهمن برادر و خواهرش را ترک کرده بود، آنها هر روز چندین بار چاقویی را که شاهزاده بهمن به آنها داده بود از غلاف بیرون می‌کشیدند و تیغه آن را نگاه می‌کردند. شب همان روزی که شاهزاده بهمن تبدیل به سنگ سیاه شده بود، شاهزاده پرویز از خواهر خود تقاضا کرد نگاهی به تیغه چاقو کند تا بفهمند برادرشان در چه موقعیتی است. وقتی شاهزاده خانم چاقو را از غلاف بیرون کشید، با وحشت فریادی زد و چاقو را به زمین پرد کرد. زیرا تیغی تا قوراخونا لود دیده بود شاهزاده پریزاد خود را از سرزنش میکرد. ای کاش چنین تقاضایی از برادر نازنینم نکرده بودم و او را با خطر روبرو نساخته بودم من سبب از بین رفتن برادر مهربانم شدم ای کاش من به جای او از بین می رفتم شاهزاده پریز که میدانست گریه و زاری او و خواهرش برادرشان را به با آنها باز نخواهد گرداند و مطمئن بود خواهرش همچنان در انتظار به دست بردن پرنده سخنگو و درخت آواز خان و آب زرین است به شاهزاده پریزاد گفت خواهر جان گریه نخون فایده نخواهد داشت و پیرزنی با ایمان را هم نباید سرزنش کنی. زیرا او خواسته است در برابر محبت و مهد تو به تو کرده باشد و تازه از کجا معلوم که برادر ما اثر یک حادثه از بین نرفته باشد. ای که احتمالاً در نتیجه بی احتیاطی خودش رخ داده است من آمادگی کامل دارم تا برای دستیابی به های تو راه سفر را در پیش گیرم آنچه بر سر برادرمان آمده سرنوشت او چنین بوده و باید به کار تسلیم بود آنچه باید بشود خواهد شد بنابراین من فردا صبح زود راسهپار سفر خواهم شد شاهزاده خانم آنچه در توان داشت بكار برد تا برادرش را از این تصمیم برگرداند و تموس می کرد برادر اگر خدایی نکرده تو را هم از دست بدهم آن وقت من تنها خواهم بود و تکیه‌گاهی نخواهم داشت بهتر است این خواسته را فراموش کنیم و زندگی خود را با خوشبختی در کنار هم ادامه دهیم اما اسار خواهر سودی نبخشید ولی قبل از عزیمت او هم یک عدد به اضافه یک رشته مروارید صد دانه به خواهرش سپرد و گفت برای آگاهی از حال من این دانه ها را میشماری. هرگاه خدایی نکرده نتوانی دانه مروادید را روی ای که به آن بنده است جا به جا کنی حتما ای برای من رخ داده است شاستاد پردیس پس از بیست روز را پیمایی با اسب به همان درویش رسید و سلام کرد و راهی را که از آن راه می توان به پرنده سخنگو درخت آوازخان و آب زردین رسید پرسید درویش این بار هم او را از جستجوی آن سه چیز من کرد وض خواست تا جان خود را در این راه از دست ندهد و خطراتی را که در این راه مدود است برایش بیان کرد. شاهزاده پاسخ داد مسافری که قبل از من به اینجا آمد و با تو صحبت کرد برادر من بود که متاسفانه جان خود را از دست داده است ولی به هر قیمت شده ناتارم این سفر را به پایان آورم. از تو خواهش دارم راه را به من نشان دهی. در ویش پاسخ داد: برادر تو مانندی رویندگان قبل از خود. که به صورت سنگ های سیاه در بالای کوه در اند مبدل به سنگ سیاه شده است و چنانچه تو نیز خود را به قله کوه برسانی مانند دیگران به سنگ تبدیل خواهی شد شاخصات پدر پدرجان شاید برادر من از راهنماییهای تو سرپیچی کرده که به این صورت درآمده. من قول می دهم سفارشات تو را دقیقا رایت کنم و بعد از پیروزی با سلامتی دوباره به نزد تو برگردم در ویش که اصرا را بیفایده دید، جامی از داخل کیسه خود بیرون آورد و به دست پرویز داد و گفت، این جام راهنمای تو خواهد بود، باید آن را به زمین پرت کنی و او با حرکت خود در روی زمین مسیر جاده دلخواه را به تو نشان می دهد، باید آن را دنبال کنی و هر کجای تو باید از عرض پیاده شوی و به کوه پیمایی بپردازی، تا به قله آن قدم گذاری و به صداها و فریادهای مبهمی که از مقابل و پشت سر خود می‌شنوی، اعتنا نکنی و به پشت سر هم نگاه نکنی شاهزاده پرویز از توضیحات درویش تشکر کرد و جام را به زمین انداخت و جام به حرکت درآمد. او هم بر اسب خود سوار شد و دنبال جام به سوی کوه را افتاد تا وقتی که جام از حرکت بازیست داد شاهزاده از اسب پیاده شد و به اطراف نگریز و در ذهن خود سفارشات درویش را مرور کرد و به حرکت خود ادامه داد هنوز بیش از شش قدم بالا نرفته بود که صدای ترسناکی او را نهیب زد برگرد کجا می روی صدا از فاصله خیلی نزدیک می آمد و ادامه داشت و می گفت این گستاخی تو بدون کیفر نخواهد ماند شاهزاده پرویز بعد از شنیدن این صداها از نیام بیرون کشید و به اطراف نگریز تا ببیند چه کسی او را تهدید می کند. و هنوز چند لحظه نبودشته بود که اسب او و خودش تبدیل به سنگ شدند. از سوی دیگر، شاهزاده خانم که گردن بند را به گردن آویخته بود هر روز و هر شب دانه های آن را جابجا میکرد و از سلامتی و ایمنی برادر اطمینان خاطر حاصل مینمود روزی که شاهزاده پریز به سنگ تبدیل شد شاهزاده خانم طبق رویه روزانه مشغول جابجا کردن دانه های گردن بند بود که احساس کرد دانه ها دیگر جا به شوند و فهمید که برادرش به حلاکت رسیده است شاهزاده خانم تنها راه چاره را در این دیر که لباس مردانه بپوشد و به همان سفری رود که برادرانش رفته اند و به خدمتکاران خود گفت برای دو سه روز دیگر مراجعت خواهد کرد شاهزاده خانم که به عصب سواری و خستگی آن عادت داشت با تابوکی راه سفر را در پیش گرفت و بعد از بیست روز سرانجام به محلی رسید که در درویش در آنجا نشسته بود. از از پیاده شد و نزد درویش رفت و بعد از سلام و عدای احترام معدبانه پرسید، لطفا راهی را که مرا به آن پرنده، درخت و آب میرساند نشان بده. درویش داد ای بانوی محترم، گرچه لباس مردانی پوشیده ای ولی از صدای شما پی بردن که بانوی محترمی هستید. شاهزاده گفت من علاقه بسیاری در به آوردن آنها دارم و درباره آنها بسیار شنیده ام و به دست آوردن آنها منتهای آرزوی من است. درویش توضیح داد درست است که این سه چیز در دنیا مشابه ندارد ولی تراش در به دست آوردن آن همراه با خطر جانی خواهد بود. من از شما تقاضا دارم که به خاطر حفظ جان خود از ادامه این سفر چर्ख پوشی کنید و از همین جا به خانه خود مراجعت کنید. شاهصاد خانم گفت، ای پدر، شما درباره سختی‌ها و دشواری ها و خطرات این سفر سخن گفتید. من به همه آنها آگاهی دارم و هیچ خودم از آنها نخواهد توانست مرا از هدف خود دور سازد. به قدر کافی شجاعت و اراده دارم که تردیدی به خود راه ندهم. راه را به من نشان دهید. با این سخنان در بیش چاره جز نشان دادن راه به شاهصاد خانم نداشت. و جام را به او داد و گفت آن را در جاده رها کن با اسب خود دنبال آن برو هر کجا ایستاد از از پیاده شو و راه سربالای کوه را در پیش گیر و باز هم به او توصیه کرد از همین محل برگرد و به استقبال مرگ شتاب نکن شاهزاده خانم در گوشهای خود مقداری پنبه داد تا فریادهای تهدیدآمیز و ترس‌آوری را که در ویش پیش بینی کرده بود نشنود بر اسب نشست و با سرعت به دنبال جام رفت تا پای کوه رسید. آنجا از اسب به زیر آمد و از کوه بالا رفت. در طول کوه کوهپیمایی صداهای ناهنجار و نامفهومی به گوشش می رسید. ولی آنگونه نبود که او را از ادامه رفتن باز دارد و یا در او ایجاد آنچنان ترسی کند که تعادلش را از دست دهد. او به خود تلقین شجاعت و خونسردی کرد تا توانست خود را به قله کوه که فضای همواری بود رساند. در روی قله کوه شاهزاده پنبه را از گوش خود بیرون آورد و قفس و پرنده سخنگوی را در آن دید پرنده به سخن آمد و گفت ای شاهزادهٔ شجا از من ناراحت نشو ممنونم که میخواهی مرا از قفس آزاد سازی اما سرنوشت مرا چنین آفریده که همواره زیر فرمان و اراده دیگران باشم و چون شما برای دست آوردن من با شجاعت خود توانستید بر تمام مشکلات پیروز شوید ترجیح میدهم که شما مرا در داشته باشید من وفاداری و فرمانبرداری کامل خود را نسبت به شما ابراز می‌دارم و به شما اطمینان می دهم که در آینده خدماتی برای شما انجام خواهم داد که خود را مدیون من خواهید دانست و برای اثبات صمیمیت خود حاضرم هر خواستهی که در زندگی داری برآورده سازم و اینک در اختیار شما هستم با وجودی که شاهصات خانم تا این مرحله بر مشکلات پیروز شده بود اما این پیروزی به قیمت از دست دادن دو برادر مورد علاقه تمام شده بود و سختی هایی را که تحمل کرده بود بیش از آنچه بود که در ویش برای شهر داده بود. در این شرایط شاهزاده به پرنده سخنگو گفت ای پرنده من خواسته های دیگری دارم که می به آنها برسم و عبارتند از آب زرین فام که داشتن آن برای من اهمیت بسیار دارد و می خواهم را بیابم. پرنده سخنگو محل آب را که در همان نزدیکی ها بود به شاسته نشان داد و او هم تبوی نقره ای را که همراه خود آورده بود از آن آب پر کرد سپس به پرنده سخنگو گفت ای پرنده من در جستجوی درخت خان هم هستم جای آن را به من نشان بده پرنده سخنگو گفت در پشت سر تو در فاصله دور جنگلی دیده می شود و این درخت را می توانی در آن جنگل بیابی شاهزاده در حالی که قفص پرنده را در دست داشت به جنگل رفت و درخت آوازخوان را که از هر برگ آن نقمه دلپذیر به گوش می‌رسید و فضا را از نوای خوش پر کرده بود، شناخت. درخت پرشاخ و برگохان سالی بود. شاهزاده گفت: ای پرنده، چگونه می‌توانم این درخت را با خود به کشورم هم کنم؟ پرنده گفت: کافی است از آن را قطع کنی، آن را در باغ خود در زمین بخاری. و بعد از مدتی کوتاه به درختی تنومند تبدیل می شود که مانند همین درختی که می بینی خواهد شد. بعد از آنکه شاهزاده چیزهایی را که در جستجویش بود به دست آورد، به پرنده گفت: ای پرنده، گرچه تو این زمان خدمات برای برایا انجام داده ای، اما این چیزها جبران مرگ دو برادر عزیزم را نخواهد کرد. زینا نرسیده به خوب، آن دو را دیدم که بر اثر جادو به صورت دو سنگ سیاه درآمده. و در کنار سایر دویندگان که همگی تبدیل به سنگوی سیاه شده اند اند از تو میخواهم آنها را به حالت اول نآوری تا بتوانند همراه من به کشورمان مراجعت کنند. پرنده پاسخ داد: گرچهام خواسته دشوارتر از سایر خواسته های تو است ولی به خاطر شما آن را انجام می دهم زیرا خود را برده شما میدانم. در این موقع پرنده به شاهزاده گفت اگر پرشور سر خود را نگاه کنی سبویی در آنجا میبینی آن را بردار و نزد برادرهایت در پایین تپه برو و مقاری از مایع مدود در آن را رو روی دو برادر و روی سایر سنگ‌های سیاه بریز همه آنها به حالت اول برمیگردند به این ترتیب دوباره برادرهایت را به دست خواهی آورد شاهزاده در حالی که قفس پرنده سبو و آب زرینفام و, و شاخه درخت و آوازخان را در دست داشت از تپه پایین رفت و روی هر یک از سنگ های سیاه مقداری از مایع صبور را ریخت و همه آنها فوراً به صورت افراد و اشخاص محترم نمایان شدند که در جستجوی خواسته های خود تبدیل به سنگ شده بودند برادرهای های شاهزاده فوراً خواهر را شناختند و هسته یکدیگر را در آغوش گرفتند و اسبهای پای همه آن اشخاص هم به حالت عادی خود برگشتند برادران شاهزاده میگفتند تو ما را از خواب بیدار کردی ما در یک خواب عمیقی بودیم شاهصاد خانم پاسخ داد شما آمده بودید که پرنده سخنگو آن درخت و آن آب را به دست آورید و با خود به قصد یعلاقی بیاورید اما بر اثر سر جادو تبدیل به سنگ سیاهی شدید آیا به یاد دارید وقتی اینجا رسیدید سنگ های سیاه بسیاری را دیدید بعد از آن دیگر چیزی بیاد نمی آورید این پرنده سخنگو توانست با راهنمایی های ارزنده خود مرا بر مشکلات چیره سازد.